با توجه به صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام راه زندگی انسانی و رفتار و حرکات صحیح انسانی رو با هم پی می گرفتیم دیدیم که بشر به اقتضای حالات نفسانی که پیدا می کند رفتار و کردارهای مختلفی خواهد داشت برخی از این رفتار رفتاری است که حتی از درندگان زشتر و پستر می میشود و برخی از این حالات به است که انسان را از ملائک برتر می‌نماید ما به عنوان انسان با به ارزشی که برای خود و عمر خود غائلیم و باید بکوشیم که تو خسران نشیم و از عمرمون بهره ببریم باید عامل یا عوامل این نوع از حرکات را بدانیم اگر رفتار سالم رو از انسونها سراغ داریم علت این رفتار سالم رو چه بدانیم و اگر رفتار ناسالم بیمارگونه از انسونها بروز می کند رو چه بنامیم با توجه با آیات قرآن کریم و توجهی که امام سجاد علیه السلام در دعای هیبده صحیفه سجادیه با الهام از همون آیات قرآن به ما آموختند عامل اصلی حالات نفسانی است و اگر نفس بیمار شود رفتاری که از این نفس نش و نما میکند بیمارگونه خواهد بود و اگر نفس سالم باشد رفتار سالم را از او ما مشاهده خواهیم کرد از عواملی که نفس را بیمار می کند نزق شیطان در نفس انسانی وسوسه شیطان در صدور بشریس ما اولاً بدانیم که نفس میتواند شیطانی شود و شیطان دشمن است که میخواهد این حالت رو در ما ایجاد کند و این حالت رو چگونه ایجاد میکند در مقابل کار شیطان ما چه باید بکنیم امام سجاد علیه السلام فرمودن خدایا به تو پناه میبرم من نزغات شیطان رجیم و کیدهی و مکائدهی و من از ثقته و امانیهی و مواعیدهی و قرورهی و مساعده. ابتدا کید شیطان مکاری شیطان از این که امیدوار و که شیطان برای ما ایجاد میکنه با به اونها اطمینان پیدا کنیم وعده هایی که میدهد فریب فریبهایی دارد که امور سراب رو برای ما آب بنمایاند منفعت نیست به ما منفعت نشون بده ما رو مسیده و آلت سیدی برای خودش قرار بده که دیگران رو به دام خودش بندازه اینا کارای شیطانیست و من جمله و انیتم نفس ان نفسهو فی ازلال نا ان طاعتک. نکنه شیطان در نفس خودش این طمع رو ایجاد کنه که بتواند ما را از تاعت حضرت حق دور کند و گمراه بسازد این نکته رو جلسه قبل یه مقداری بر برو پای فشوردیم تأکیدم میکنیم امام علی السلام همونگونه که در آیات قرآنم زیاد اومده و جلسه قبل اشاره کردم توجه زیادی به ما میدهد که اطاعت پروردگار مانع تمع و چشم امید داشتن شیطان در شماست پس یکی از راه های پناه بردن به خدا برای دور کردن شیطان از خود مقید شدن به اطاعت است اما در ادامش و امتحاننا به معصیت امتحان باهی دو چشم است از کلمه مهن باب افتعال است باب افتعال در ادبیات عرب گفته شده برای مطاوعه یا پذیرش است یک امری رو یک زمان انسان نمیپذیرد و رو تحمیل می شود به صورت مقطعی و موقت با او همراه میگردد چون پذیرا نیست هر لحظه ممکنه از او دور بشه مثلا شخصی سوار بر یک مرکبی می شود این مرکب پذیرای این سواره نیست نمیخواد سواری بده هی به عناوین مختلف سعی میکنه این راکب رو از خودش به زمین بندازه و اگر یک کمی هم راکب بخواد مرکب رو وادار کنه که تند حرکت کنه چه بسا راکب از روی او به زمین بیفته یا مثلا یک لباسی رو به تن ما میکنند ما علاقه مند به این لباس نیستیم نمیخوایم این پوشش با ما پاشه پذیرای این گونه پوشش نیستیم چه بسا یه مقداری که جلو رفتیم این پوشش رو از بکنیم آمادگی نگهداری نداریم. ولی در زمینه ای که پذیرش داریم خودمون این رو می مثل که یک لباسی رو می یا یک مثلا پوششی رو دوست داریم خودمون اینو رو می وقتی در اختیار ما گذاشتن با آغوش باز در اختیار می گیریم امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما این نکته رو می خدایا به تو پناه میبرم که شیطان که میخواهد نزغش را در ما اعمال کند این طمع را پیدا کنه که بتواند به وسیله معصیت کردن به تو به سبب اسیان ورزیدن در مقابل تو حالتی در ما ایجاد بشه که امتحان نا پذیرش مهن خاری و ذلت رو داشته باشیم یک پس معصیت عامل خاری و ذلت بندگان خداست دو کسانی که محسییت میکن پذیرای این خاری و ذلت می شود. یعنی با دست خودشون زمینه پس شدن و ضلت و خاری را برای خودشون فراهم می کنن. شیطان میخواهد با نزقی که میکند ما را نسبت به این معصیت آماده کنه. همانطور که در قسمت اول، ما این توجه رو پیدا کردیم که اطاعت عامل قرب است اطاعت عامل است اطاعت عامل تعالی و رشده شیطان نمیخواد ما مطیع باشیم خب ما برای اینکه با شیطان در بیفتیم حساسیت به اطاعت نشون بدیم نقطه مقابلم معصیت از پروردگار به زرر پروردگار نیست به زرر ما بندگانه در غالب مثال ارز میکنم در مثال مناقشه نیست اگر شاگردی تحت تأثیر مربی قرار گرفته برای تربیت شدن لازمه تربیت و نهیه یعنی مربی باید یه دستوراتی رو اعمال کنه و از متربی بخواد که این دستورات رو طرف عمل کنه یک نواهی داره میگه این کارا رو نباید بکنی که در اثر انجام اون عوامر و ترک اون نواهی این متربی و شاگرد به اون تربیتی که مورد نظر استاد و معلم هست برسه قسمت اول اگر شاگرد مطیع نشد استاد zarar نمیکنه ولی نتیجه تربیت برای متربی حاصل نمیشه قسمت دوم هم اگر شاگرد به اون نواهی استاد میگه این کار نکن از این امر دور باش این رو گوش نده یعنی اسیان ببرزه به تعبیری معصیت میکنه اگر اسیان میبرزد و خلاف اون چه که استاد میگه عمل میکنه استاد که زرر نمیکنه زرر متوجه این شاگرد میشود زرر چیه؟ مثلا وقتی در تعلیم و تعلم و تربیت رشد علمی یا اخلاقی است اسیان کرد رشد علمی پیدا نمی کند رشد اخلاقی پیدا نمیکنه. اطاعت پروردگار برای قربه کسی اطاعت نکرد خب قربه خدا پیدا نمیکنه. کند معصیت پروردگار اگر خدا گفته این کارها را نکن انجام اون کارها ما را از خدا دور میکنه، دور شدن از خدا خاری و ذلت و هقارت و پستی و گرفتار شهوت و تعلقات دنیایی شدنه خب شیطان چون میخواهد در نفس ما این حالتهای پست رو ایجاد کنه طبیعتا میخواد ما رو وادار به معصیت کنه امام سجاد علیه السلام در این دعا این رو به ما یاد میده از خدا بخواهیم خدایا انا بکه. اللهم انا نعوذو بکر ای خدا به تو پناه میبریم از چی؟ از این که شیطان ان ان نفسهو در نفسش این طمع رو ایجاد کنه این امید داشته باشه امتحان به معصیت ما را به وسیله معصیت تو خار و ذلیل بکنه پس بدانیم هر معصیتی که ما انجام میدیم به اندازه اون معصیت ذلت و خاری داره و به اندازه اون معصیت از خدا دور میشیم در نتیجه شیطان به اندازه اون معصیت خوشحال میشه چون بهره برده و ثمر گیرش اومده همونطوری که مثلا اگر استاد به من میگه شما برای تا هفته دیگه این درس رو این کارا رو میکنی اما این کار و این کارو نکن به اندازه این دوتا کاری که گفت نکن اگه من انجام دادم به اندازه این دوتا کار از هدفی که استاد برای من در نظر گرفته دور میمانم هر معصیتی به اندازه همون معصیت ما رو از حضرت حق دور میکنه لذا باید توجه داشته باشیم معصیت رو دست کم نگیریم عزیزانم این نکتر رو تقاضا دارم دقت کنید بنده زیاد برخورد کردم و مراجعات زیادی داشتم کسانی که میگوین ما در اطاعت ممکنه مشکل نداشته باشیم یعنی نماز رو میخونیم چهر روزمون رو میگیریم حتی در جنبه مالی اگر دیونی به عهده ما آمد با علاقه میپردازیم. ولی نسبت به برخی از ها قدرت اجتناب و کنترل خود رو نداریم برخی شهوات ما رو تحریک میکنه. برخی قرائز در ما قدرت می‌یابه و ما رو وادار به یک کارایی میکنه که این کارها خب از نظر دین معصیت ما قدرت ترک معصیت در ما ضعیفه آیا اون اطاعتها جبران نمی کند قاطعانه عرض می کنم خیر هم از نظر شرعی هم از نظر عقلی از نظر شرعی این حدیث رو هم شخص نبی اکرم فرمودن هم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اجتناب و سیعات اولا من اکتصاب الحسنات دوری جستن از بدیها ها اولاست، سزاوارتر است، نسبت به کسب حسنات، یعنی ترک معصیت مهمتر از انجام واجبه باز این روایت از شخص نبی اکرمه، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب محجت الویزا یک بابی دارد و در این رابطه مفصل داده سخن داده که نبی گرامی اسلام فرمودند لا ملائكه ملائك در اون خانه ای که سگ باشد وارد نمی شود مرهوم ملا محسن تحلیل می کند اخلاقی میگوید یکی از تفاصیل و تحلیل ها و معانی این حدیث این است مادامی که خانه دل سگ صفتی دارد این بیت خان بیت دل است خانه دل است مادامی که خانه دل سکسفتی دارد حیوان سفتی دارد شهبت رانی دارد تعلقات پست مادی دارد ملائکه وارد نمی‌شوند یعنی صفات ارزنده فرشتگی وارد نمیشه. خانه دل جارو کن ونگه مهمان طلب خانه دل نیست جای صحبت اقیار دیو چو بیرون رود فرشته درآید اگر ما نتوانیم بدیها رو از خودمون دور کنیم، از نظر این روایات هایی که میخواییم انجام بدیم و سماری که با داشته باشه نداره. از نظر عقلی من توضیح بدم. ببینید مثلا در بعد تجربی علمی اول بگم، بنده برای سلامتی جسمم مثلا لازم فلان دارو رو بخورم. یا فلان غذا رو بخورم اما اتبای صاحب نظر به من تجویز کردن شما حتما فلان غذا را نباید بخورید چون اگر این غذا رو خوردید ولو فلان دارورم میخورید اثرش رو خنسا میکنه من اگر دارو را بخورم اما این پرهیز رو نداشته باشم و این عامل خنساکننده کننده رو وارد بدن کنم آیا اثر خوب رو از بین نمیبره؟ من یک ظرفی داشته باشم آب تصفیه شده سالم گوارا رو وارد این ظرف کنم که در منزلم از او استفاده کنم اما داخل ظرف آلوده باشد هر چه آب رو تصفیه می‌کنی چون مانع خراب کردن در داخل ظرفه آبی که شما از این ظرف برمیدارید دارید آلوده است لذا اگر معصیت می‌کنیم معصیت چندین اثر داره یک دل را قسی می‌کنه دل اگر قصی شد کم کم زمینه اطاعت رو از بین میبره اطاعت رو می میکنه اثر اطاعت رو از بین میبره لذا امام سجاد علیه السلام در این فراز دارن به خدا پناه میبرند از اینکه نکنه شیطان این تمع رو پیدا کنه که مرا وادار به معصیت کند، در اثر این معصیت من خاری رو بپذیرم. باب افتعال از کلمه مهن به کار برد، یعنی پذیرش مهن داشته باشم. پذیرش این حون و سستی و خاری و ذلت و فرومایگی رو داشته باشم. چون وقتی من معصیت میکنم، یعنی با دست خودم این خاری رو برای خودم میخرم. لذا نکته بعدی که در این دعا آموزیم اینه، اگر اطاعت مهم است باید مطیع باشیم معصیت خطرناکه شیطان میخواهد با با معصیت های ما ما رو خار کنه ما رو از حریم الهی دور کنه و در ادامش او ان یحسن اندنا ما حسن لنا او ان یسغل علینا ما کره علینا قسمت اول او یا اینکه ان یحسن عندنا شیطان کاری بکند این طمع رو در وجودش پیدا کنه که یحسن عندنا زیبانشون بده دارای حسن نشون بده ملایم با تب نشون بده ما حسن لنا چیزی که در واقع برای ما حس نیست یعنی ضد ارزش رو ارزش نشون بده ببینید کسانی که قصد فریب و نیرنگ دارن معمولاً میکوشن اون خاسته را که میخوان به کسی تحمیل کنند. اگر بهش بگن این خاسته بده، زشته، مفید نیست، داره که کسی عمل نمیکنه میکوشه او رو زیبانشون بده حسن است که با ذات انسان ملایمه مثلا ما اگر به ذات انسان مراجعه کنیم میبینیم انسان ها از راستگویی ذاتن لذت میبرن لذا اگر به یه فردی بگیم دروغ بدش میاد چون ذاتش با دروغ انس نداره اما کم کم حالت سانوی پیدا میکنه در اثر رفتار بد خودشو عادت میده خدایی نکرده این عمل بد رو بپذیره پس چیزی که حسنه یعنی با ذات ما هم ملایمه چیزی که حسن نیست با ذات ما ملایمت نداره یکی از کارهایی که شیطان میخواد انجام بده اینه. اینا رو جا اونی که حسن نیست به ما حسن نشون بده. اونی که حسن هست به ما قبیح و ناپسند و غیر حسن جلبه بده. خب ما اینو باید بدونیم. اون کسی که دارد این گونه به ما نشون میدهد او شیطانی است که کارش نزغه. وقتی کارش نزغست و غرور است و فریب است و کیده است، پس معلوم چی چیزی را که او حسن نشون میده این نمیتونه حسن باشه. اما این باید فهمید. اینو آگاهی و معرفت باید داشت در اثر اون معرفت این جا به جا ای ها رو متوجه شد لازمش چیه؟ لذا یک بحث بسیار زیبایی رو حتی کسانی که در عرفان اصیل اسلامی کار کردند مکاشفات صحیح قلبی رو واقف شدن یکی از مراحل عالی که انسان در درونش میابه شهود قلبی کشف درونی مثل این که پیغمبر فرمودند: من اخلص الله اربعین سباهن جرت ینابی الهکمه من قلبی لسانه کسی چهل روز خودشو برای خدا خالص کنه حقائق در دل او پیدا میشه و از قلبش مثل چشمه جوشانی به طرف زبانش جاری میشه یا باز پیغمبر فرمودن لولا ان الشیاطین يهومون على قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات اگر این شیطنت ها دور دل بنی آدم رو نگرفته بود این دل قدرتی داره که حقایق ملکوت رو رؤیت میکنه اینا رو میگن مکاشفه اما چون شیطان دشمن ماست سعی دارد در ما نفوذ کند تا با نفوذی که در ما میکند اون ارزش را ضد ارزش در دل ما جای بنشاند ضد ارزش ها را ارزش جای بنشانه همه عرفا به این نکته توجه کردند لذا گفتند عارف واقعی کسی است که فرق مکاشفات رحمانی را با حواجس شیطانی تمیز بدهد یعنی چی یعنی همون طوری که رؤیای ما میتونه رؤیای صادقه باشه یا رؤیای کاذبه رؤیای صادقه واقعا روح در حالتی که خوابیده ایم پرواز به عالم بالا میکند حقایقی را میبیند در قالب رؤیا ما آگاه میشویم اما رؤیای غیر صادقه امکان اینکه شیطان نفوذ کرده باشد و القا کرده مطالب باطلی رو در آن ذهن و روح ایجاد کرده باشه نیست، لزامیشه خوابهای شیطانی. همینطور در مکاشفات درون ما میتونه برخی مکاشفات شیطانی باشه، وسوسه شیطان باشه، همونطوری که در سوره ناس هم قبلا اشاره کردم، الزی یوسبسوفی صدور الناس من الجن و الناس. لزامی برای اینکه بدانیم اینی که الان به دل ما خطور کرده این درسته یا نه باید با معیار شرع و عقل تطویق کنه اگر با این دوتا تطویق نکرد قطعا نفوذ شیطانه حالا طبق این بیان اگر میگیم او ان یه سونه اندنا ما حسن لنا. یه چیزی رو هی به ما زیبا جلوه میده اما ما حسن لنا این برای ما زیبا نیست یعنی شر گفته زشته شر گفته ناپسنده، عقل میگه ناپسنده، او هی در درون من وسوسه میکنه، نه خیر، ایبی نداره، خوبه. اینجا باید بدونم که این همون طمع شیطانه در نفسش که میخواهد در من نفوذ کند، راهش چیه؟ باید قاطعانه جلوشو بگیرم، بگم مثلا اگر شرع من گفته است نگاه به نامحرم حرام است. اگر شرع من گفته است دروغ حرام است. اگر شرع من گفته است مال مردم خوردن حرام است اگر شرع من گفته کبر و حسد و منیت و خود را بزرگ دیدن ناپسنده حالا اگر میبینم داره در درون من این وسوسه ایجاد میشه من که از او بالاترم به چه دلیل شاگرد او شوم؟ به چه دلیل حرفای او رو گوش کنم به چه دلیل کتاب او را بخوانم، وقتی به شر مراجعه میکنم میگه شما باید اگر کسی حرف حق زده گوش بدید حرفها رو درس بگیرید سراغ بزرگترها برید از اونها آموزش بگیرید یا اگر به من میگه حالا اینجا این دروغ رو بگو تا بتوانی نفع ببری به من گفت این دروغ رو نمیتونی بگی اینجا اون را که برای من حسن نیست یعنی شرع و عقل حسن نشون نداده او داره حسن نشون میده از این طریق میبینه من پذیرش نشون میدم وقتی پذیرش نشون میدم امیدش در من که طمع کند و بیشتر مرا در این راه به فریبت زیاد میشه برای اینکه روزنه امید او را قطع کنم و این نکته را ببندم نگذارم او در این مسیر جلو بیاد چیه؟ بگم حسن اونیس که شرع میگه حسنه غبیه اونه که شر بگه قبیهه گاهی از این کانال شیطان وارد میشه آقا مردم اینجوری میگن خب برای من مردم حجت است یا خدا اگر دیدم خدا این امرو نمیپذیره ولی مردم میپذیرن خب این همونیست که خدا حسن نمیداند مردم حسن میدانند شیطان مرا تحت تاثیر مردم قرار میده حسن مردم را که خدا حسن نمیداند حسن بدانم خدا این امر را قبیه میداند مردم قبیه نمی دانن. پس من چون مردم قبیه نمی دانند، قبیه بدانم، این نفوذ شیطان در من لذا امام سجاد علیه السلام، این درس رو به من یاده که اللهم انا نعوزو بک من نزغات شیطان، خدایا به تو پناه میبرم از این تحریک های خرابکارانه شیطانی تا به اینجا برسه او انیه یحسن اندنا ما حسن لنا، اینکه که پیدا کنه بتونه در من اینگونه نفوذ کنه چیزایی رو برای من حسن نشون بده که در واقع حسن نیست خب اگه حسن نیست شیطان بتونه به من حسن نشون بده خب ارزش ها رو باجگونه میکنه ارزش ها باجگونه شد اون ای که شیطان میخواد بگیره بگیره پس درسی که از این فراز نهجل بلاغه از این فراز صحیفهی سجادیه برای زندگی خودم میاموزم چیست؟ اونی را که خدا گفته از حسن است حسن بدانم اونی که خدا گفته حسن نیست حسن ندانم به تعبیر دیگر حرام خدا را حرام بدانم حلال خدا را حلال بدانم واجب خدا را واجب بدانم مستحب خدا را مستحب بدانم مکروه خدا را مکروه بدانم تا شیطان امیدش را از من قطع کند انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعدی پی خواهیم گرفت و سلام علیکم